عزیزان، موسا امروز یکی از بزرگترین معلمین و واعظینی که در کتاب مقدس میبینیم و امروز چیزهای زیادی برای گفتن به ما داره. امروز ما شروع به مطالعه کتاب تصنیه میکنیم جایی که موسا پیغام عظیمش رو به قوم خدا قبل از ورود به سرزمین وعده میده. در ادامه مطالعه احد قدیم آماده ایم که کتاب تصنیه رو با همدیگه بررسی کنیم. کلمه تصنیه به معنی بازگویی یا تکرار قوانین هست. وقتی که به کتاب تصنیه می رسیم، بررسی می بینیم که اون چیزی بیش از بازگویی قوانین هست. اون بازگویی و تکرار قوانین با کاربردها ها هست. کاربورد قوانین، کاربرد خاصی برای نسل دوم قوم خدا بود. در کتاب اعداد ما پیغام مهی مرگ یک نسل رو داشتیم، تمامی نسل. نسل اول قوم خدا به خاطر بی‌ایمانیشون در بیابون مردند حالا وقتی که به کتاب تسنیه می رسیم بنی اسرائیل آمادند که از رود اردان عبور کنند و وارد سرزمین کنان بشند این نسل دوم قوم خدا هست یادتونه که خدا به اون قوم که ایمان نداشتند در بیابان گفت که به کنان حمله کنند خدا سعی کرد که اونها رو مطمئن کنه که قادرشون خواهد کرد کنعان رو فتح کنند اما اونها گفته بودند اگه ما اونجا بریم و به کنعان حمله کنیم فرزندان ما برده کنعانیان خواهند شد این اونقدر خدا رو محزون کرد که به موسی گفت یادتون هست در اعداد 14 گفت اما اطفال شما که درباره آنها گفتید که به یغما برده خواهند شد ایشان را داخل خواهم کرد و ایشان زمینی را که شما رد کردید خواهند دانست لکن لاشه های شما در این صحرا خواهد افتاد حالا این نسل دوم قوم خدا فرزندان کسانی که در بیابان هلاک شدند نزدیکه که از اردن بگذرند و به کنعان هجوم بیارند کتاب تسنیه سندی است از پیغام بزرگ موسی که قبل از عبور اونها از رود اردن و حمله به کنعان براشون موعظه کرد در جمله آغازین این کتاب بذارید براتون تفسیر کنم و اونو براتون باز کنم که بهتر بفهمید. اینجا به ما شرحی از این کتاب داده شده که به ما کمک میکنه مفهوم واقعی کتاب تسنیه رو درک کنیم اون میگه این از سخنانی که موسی به آن طرف اردن در بیابان عربه مقابل سوف در میان فاران و توفل و لابان و حزیروت و دیزهب با تمامی اسرائیل گفت از هوریب به راه جبل سعی تا قادش برنی سفری یازده روزه هست پس در روز اول ماه یازدهم، یعنی پانزدهم فوریه سال چهلم، موسی بنی اسرائیل رو بر حسب آنچه خداوند او را برای ایشان امر فرموده بود تکلم نمود چیزی که این گفته به یاد ما میاره این واقعیته که اونها به مدت چهل سال در بیابان راه میرفتند و یادتونه که اونها به شکل دقیقی راه پیمایی میکردن اونها فرمی نظامی به خود گرفته بودند. وقتی اونها در بیابان راه پیمایی میکردن توایف خاصی در شمال توایفی در جنوب توایفی در شرق و توایفی در غرب خیمه پرستش قرار می گرفتند این مهمه که یادتون بیاد که وقتی اونها سرگردانی در بیابان رو در کتاب اعداد تجربه میکردند اونها از جوشن بیرون آمده بودند اونها از مصر بیرون آمده بودند و از قادش برنی به پای کوه سینا رسیده بودند چون که فلسطینیان این قلمرو رو در تصرف داشتند بعد اونها دایره ای رو به مدت 38 سال دور زده بودند بالاخره اونها در شرق رود اردن اردو زدند قبل از اینکه از رود اردن عبور کنند و به سرزمین کنعان حمله کنند موسا معزه بزرگی براشون کرد که در کتاب تسنی میبینید کتاب تسنی چیزی بیش از تکرار قوانین هست یا بازگویی قوانین از این جهت قوانین بازگویی شده و تکرار شده چون لازم بود که به اونها یادآوری بشه تمامی نسلی که در موقع داده شدن اصل قوانین یا شریعت زندگی می مرده بودند. به جز کالیب و یوشه و فرزندان اونها باید این شریعت رو میشنیدند قبل از اینکه به کنان حمله کنن موسا خواست به عنوان آخرین وزیفهش در روی زمین مطمئن بشه موسی می خواست مطمئن بشه که اونها کلامی رو که خدا در کوه سینا به موسا داده بود بشنوند تمثیلی از نجات هست که از اولین کتاب کتاب مقدس ادامه داره پیدایش به ما آغاز نجاتمون رو نشون میده خروج رهایی از بردگی و بندگی رو به ما نشون میده و تصویر زیبایی از نجات هست چون که اون نجات از بردگی گناه رو به تصویر میکشه همونطور که قبلا گفتیم کلمه رهایی و کلمه نجات در عهد قدیم یک معنی داشتند کتاب اعداد این مسئله ترسناک رو به ما نشون میده که چطور اونها وقتی از اسارت مصریان آزاد شدند به سرزمین کنعان حمله نکردند این کاری بود که اونها باید می و تنها کاری که باید می این بود که به خدا اعتماد کنند. به طور تمثیلی بارها گفتیم که این تصویری از واقعیت زمانی که ما از بردگی گناه رها شدیم ما قرار بود که وارد فراوانی حیات بشیم این سرزمین وعده فراوانی زندگی مسیحی رو با تمام برکاتش با تمام جازبهاش با تمام عطایای روحانیش تداعی می کنه. ما مقرر بود که وارد اون بشیم اما بسیاری از ما وارد نشدیم ما مثل قوم اسرائیل در کتاب اعداد در یک دایره دور خودمون میچرخیم بیاید فرض کنیم یه خورده از تمثیل فراتر بریم ما تجربیات سرگردانی بیابانهای خودمون رو ایم و به خودمون ایم. ما از خدا هر چیزی رو که برامون داره می خواهیم و آماده هستیم که وارد سرزمین وعده او برای ما بشیم بیایید فرض کنیم که یه خورده از تمثیل فراتر بریم ما تجربیات سرگردانی بیابان‌های خودمون رو داشته‌ایم و حالا به خودمون اومدیم. ما از خدا چیزی رو که برامون داره می‌خوایم و آماده هستیم که وارد سرزمین وعده او برای ما بشیم کتاب تصمیه پر از هایی برای کسانی که در این وضعیتن. کسانی که تصمیم گرفتند جزی از اقلیت متحد باشند نه از اکثریت بیتفاوت. این تصویری از کسی که گفته خدایا من همه اون رو میخوام. من از سرگردانی در بیابان خسته و درمانندهام و میخوام وارد هر چیزی بشم که تو برای من در نظر گرفتی. اگر شما در این موقعیت هستید کتاب تسنیه برای شماست. چون کتاب تسنیه کتاب تشویقی برای اونهایی که قصد دارند تمام اون نصیحت رو بپذیرند. شما هم مطمئن باشید که تمام اون رو بپذیرید. موضوع مهم دیگه در کتاب تسنیه مربوط به اینه که وعده خدا برای قوم خدا تحقق پیدا میکنه خدا به اونها نصیحت کرده بود که این وعده رو به فرزندانشون انتقال بدن خدا میخواد که مردم او رو با تمام وجودشون دوست داشته باشن نصیحتی که در کتاب تصنیه هست بارها و بارها برای این قوم تکرار میشه از خدا اطاعت کنید و این ارزش ها رو به فرزندانتون نیز منتقل کنید که خدا رو دوست داشته باشن و کلام خدا را دوست داشته باشن و از اون اطاعت کن به اعتقاد من هر باب از کتاب مقدس بابی تعیین کننده داره اعداد چهارده باب تعیین کننده در کتاب اعداد بود به اعتقاد من باب شش کتاب تسنیه باب تعیین کننده این کتابه چون که تصویری از مفهوم بقیه موعظه های موسی هست. نه تنها محتویات این موعظه گامی برای دیگر موعظه های کتاب تسنیه هست بلکه هدف این موعظه نیز همانند اهداف سایر موعظه هاست. در تسنیه شش به خصوص در آیات چهار تا نه چیزی رو دارید که علمای دینی قدیم اون رو به عنوان بزرگترین معاوزه موسی داد کردن در واقع این قسمت از آیات در تصنیه شش به عنوان مبنای اعتراف ایمان یهودی به حساب اومده این قلب اون موعظه هست میگه ای اسرائیل بشنو یهوه خدای ما یهوه واحد است. پس یهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما و این سخنانی که من امروز تو را امر میفرمایم بر دل تو باشد و آنها را به پسرانت به دقت تعلیم نما و هین نشستن در خانه و رفتنت به راه و وقت خوابیدن و برخاستن از آنها گفتگو نما و آنها را بر دست خود برای علامت ببند و در میان چشمانت اسابه باشد و آنها را بر باهوهای در خانه و بر دروازه هایت بنویس موعظه طولانی تر از اینه اما این قلب معزه هست و همینطور قلب کتاب تسنیم هم هست چیزی که موسا در واقع درست قبل از عبور از رود اردن و حمله به کنعان به این قوم میگفتینه گوش کنید خدا شما رو فراخونده تا قومی باشید که خدا رو با تمامی وجودتون محبت کنید برای اینکه بتونید محبتتون رو به او ابراز کنید باید از کلامش اطاعت کنید برای اینکه بتونید از کلامش اطاعت کنید باید کلام او رو بدونید خدا میخواد های شما روزی نسلی بشن که خدا رو با تمام وجودشون محبت کنند. برای اینکه بتونن خدا را با تمامی وجودشون محبت کنند، باید کلام او رو دوست داشته باشند، بشناسند و از اون اطاعت کنند. بنابراین من به شما مأموریت میدم. اولاً ببینید خودتون خدا را با تمامی وجودتون محبت می کنید و کلامش رو میدونید و از اون اطاعت می کنید و بعد مطمئن بشید که این ارزشها رو به فرزندانتون منتقل کنید چیزی که در واقع موسا به اونا میگه اینه که چطور فرزندانشون رو تعلیم بدند تا قومی بشند که خدا رو محبت کنند و از او اطاعت کنند. و اینجا موسا کلام رو جز به جز برای اونها میخونه. مثل یک دوره تعلیمیه که در ضمن اون این معجزه به وقومی پیونده. والدین چطور میتونن فرزندانشون رو پرورش بدند که وقتی بزرگ میشند ارزشهای های روحانی داشته باشند که خدا رو محبت کنند و از او اطاعت کنند. این چیزی که مفهوم کلی این معهزه هست. اگه به دوره آموزشی که توسط موسی اینجا تعلیم داده شده نگاه کنید شما یک دوره آموزشی رو میبینید که بر چهار اساس بنا شده. اولین اساسی که این دوره آموزشی بر اون بنا شده اساس مکاشفه هست. چیزی که موسا به والدین درباره پرورش فرزندان میگه اینه اگر میخواهید به فرزندانتون تعلیم بدید که خدا را محبت کنند پس مبنای تمام تعالیمی که میخواید به فرزندانتون بدید باید کلام خدا باشه تعالیم موسا دقیقا اینه خدا هست و اگر اصلا خدا هست پس خدا همه چیزه خدا مطلق هست در فلسفه ما سوالی میپرسیم آیا هیچ مطلقی وجود داره؟ یا اصلا چیزی به نام مطلق وجود داره؟ موسا در طی این دوره آموزشی به ما میگه خدا مطلق شما هست خدا مطلقه و این خدای مطلق چیزی گفته هر چیزی که خدای مطلق میگه مطلق است بنابراین اگر خدای مطلق کلامی مطلق به شما میده پس اخلاقیات مطلقی هستند که باید به فرزندانتون تعلیم بدید عقیده موسی اینجا اینه خدای مطلقی هست، کلام مطلقی هست بنابراین راههای مطلقی هست که فرزندانتون باید در اونها گام بردارن. کتاب مقدس بعدا میگه تفت را در راهی که باید برود تربیت نما و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید فرزندانتون رو را در راهی که باید بروند تربیت نمایید آیا راهی هست که فرزند شما باید در اون بره بسیاری از مردم امروزه سر این موضوع بحث میکنند فرضیه های اخلاقی میگن همه نسبی هستند و قطعیتی نیست یادمه وقتی که مددکار اجتماعی بودم در یک سمینار حضور داشتم که بعضی از خبرگان جرائم جوانان در آن سخنرانی میکردن. جمله آغازین این گروه که توسط مردی که سمینار رو اداره میکرد گفته شد این بود. اولا بذارید این رو روشن کنم که مطلقی وجود نداره. من دستم رو بلند کردم و گفتم دکتر من همین الان از پیش دختری چارده ساله میام که به طور مطلق حامله است. چطور میتونید به جوانان بگید که مطلقی وجود نداره؟ عواقب به مطلقی هستند. اونها یا مطلقاً خوبند یا مطلقاً بد اگر عواقب مطلقاً خوب و یا مطلقاً بد هستند پس باید بعضی تصمیمات اخلاقی هم در جای گرفته بشن این دوره آموزشی که موسا برای این قم شهر میداد مربوط به قطعیت بود او گفت خدا قطعاً وجود داره کلام خدا قطعیه راه‌های قطعی وجود دارن که فرزندانتون باید در اون گام بردارن اخلاقیات قطعی هستند که باید به فرزندانتون یاد بدید وقتی که حقیقت چیزی رو که موسی میگفت درک کنید اون میتونه بر راههایی که فرزندانتون رو بزرگ میکنید تأثیر بذاره شنیدم که یک روانشناس مسیحی این سوال رو از حدود 600 نفر زن که مادر و خانهدار بودن کرده بود او پرسیده بود قبل از اینکه فرزندانتون رو وادار به انجام کاری بکنید چند بار از اونها خواستید که این کار رو بکنن جواب میانگینی بین سه تا پنج بار بود. وقت رفتم به رختخواب پسرتونه و شما بهش میگید پسرم وقتشه که به رخت بری. برو توی اتاقت و بخواب. سه دقیقه بعد به پسرتون نگاه میکنید و او اطاعت نکرده و یا اصلا توجهی نکرده. او کوچکترین حرکتی به طرف اتاق خواب نکرده. خب دوباره میگید. پسرم گفتم که وقت خوابته. زنان اعتراف کردن که سه تا پنج نبودند اما وقتی واقعا منظورشون این بوده که بره و بخوابه یا فریاد زدن یا از صندلی پایین پریدند و پسرشون رو به طرف رخت خواب کشوندن. پسر کوچ که شما عادت میکنه که تا چهار پنج بار به روی خودش نیاره. او چهار بار اول رو امتنا میکنه میدونه که شما با اون لحنه صدا جدی نیستید. من از خانواده پر جمعیتی هستم که یازده فرزند داشتند. مادرم با وجود اینکه بیش از یک متر و نیم قط نداشت، ولی شرایط اقتصادی زمان او او رو مجبور کرده بود که چیزهایی در مورد بزرگ کردن فرزندانش یاد بگیره او یک دوره روانشناسی تعیین نکرده بود اما هرگز حرفی رو دوبار تکرار نکرد او یک بار به ما میگفت و اگه ما انجام نمیدادیم او دیگه تکرار نمی کرد، بلکه با عمل پاسخ میداد. من فکر می کنم که این انضباط خوبیه چون اگه بهش فکر کنید اگه دستوری که من به فرزندم میدم حتی اگر اینه که برو به اتاقت و بخواب اگر از این دیدگاه ناشی بشه که یک خدای مطلق هست پسرم و این خدای مطلق کلامی مطلق به ما داده و یک راه مطلق برای تو و برای بزرگ شدن هست خدا منو مسئول و معمور کرده که تو رو اینجوری بزرگ کنم این به این معنیه که فقط یک راه مطلق از اینجا به اتاق خواب تو هست و جای هیچ بحثی نداره با تو بحث نخواهم کرد پنج بار به تو نخواهم گفت فقط یک بار خواهم گفت دوره آموزشی که موسی اینجا شرط داده بر پایه مکاشفه کلام خدا بنا شده. مکاشفه کلام خدا اولین زیربنای بنای تعالیم مسیحیه. من از آین بسیاری از دانشگاه های بزرگ این کشور حیرت میکنم. در این آین نامه ها بنیانگزاران اون دانشگاه ها اظار میکنم که هدفی که دانشگاه بر اون بنا شده چیه؟ میدونید اغلب آینامه های قدیمیترین دانشگاه های ما چی میگن؟ والدینی که اون آینامه رو می نویسند میگن که، اونا میخوان فرزندانشون خدا رو بشناسن خدا سرچشمه تمام علومه خدا منبع همه چیزه او قدرت پشت همه چیزهاست او مهمترین وجود دنیاست بنابراین میخوام فرزند من خدا رو بشناسه میخوام فرزندم کلام خدا رو بدونه من میخوام فرزندم قادر باشه کلام خدا رو بخونه من میخوام او تعلیم بگیره تا کلام خدا رو بدونه تا بتونه خدا رو بشناسه اظهاراتی مثل این این نامه‌های زیربنایی بسیاری از دانشگاه های بزرگ دنیا هستند متاسفانه باید بگیم که بسیاری از اون دانشگاه ها امروز کلام خدا رو و یا چیزهایی که مطلق هست تعلیم نمیدن. اما این اظهارات هنوز در این نامه‌ها هست زیربنای دوره آموزشی که موسا شرح میده کلام خدا هست کلام مطلق خدای مطلق دومین پایه‌ای که بر مبنای اون این دوره آموزشی بنا شده پاسخگویی هست. کی مسئول پرورش فرزندان هست بعضی ها فکر میکنند که مسئولیت پرورش فرزندان دولت هست وقتی من بچه بودم اگر به مدرسه نمیرفتم معمور پیگیری دنبال من می اومد. من به عنوان یک جوان به این نتیجه رسیده بودم که دولت معمور پیگیری رو استخدام کرده و اون مسئول که از رفتن من به مدرسه مطمئن بشه پس مردم به این نتیجه می که چون مدرسه ها دولتی هستند باید دولت مسئول آموزش فرزندان اونها باشه بعضیها شاید بگن نه این مسئولیت کلیسا هاست. کلیسا مسئول تعلیم دادن به فرزندان منه. من بچه هام را هر یکشنبه به مدرسه کلیسا میبرم و اونا نیم ساعت اونجا تعلیم می گیرن. این مسئولیت است که فرزند من تعلیم بده که خدا رو محبت کنه و کلام خدا رو دوست داشته باشه و از اون اطاعت کنه. این مضح اگه به این واقعیت توجه کنید که یک سال۸ ساعت هست، و اگه بچه شما هرگز از مدرسه کلیسا قیبت نکنه او فقط 26 ساعت رو در مدرسه کلیسا تعلیم میبینه آیا فکر میکنید که 26 ساعت از 8760 ساعت واقعا زندگی او رو شکل خواهد داد؟ کسانی هستم که میگن من بچم رو توی مدرسه مسیحی گذاشتم مدرسهی وابسته به کلیسا حدود 1080 ساعت در سال اونجا خواهد رفت و شما فکر میکنید که این مسئولیت مدرسه های مسیحی هست؟ و اونها فرزند منو تغذیه کنند که وقتی بزرگ میشه خدا رو و کلام خدا رو دوست داشته باشه و از کلام خدا اطاعت کنه اگر شما اون ساعت ها رو به ساعت های کلاس یکشنبه مدرسه کلیسا اضافه کنید او هنوز هفت هشتم زمانش رو با شما سپری میکنه پس تعجبی نداره که موسا در این مد مسئولیت تعلیم فرزندان رو به عهده والدین میذاره موسا گفت شما والدین این مسئولیت رو دارید موسا مخصوصا این ماموریت رو به پدران میده وقتی که میگه بذارید این کلام در قلب شما ساکن بشه و بعد اون رو به پسرانتون تعلیم بدید به اعتقاد من موسی اینجا بسیار بر اینکه پدران باید تعلیم رو به عهده بگیرن تاکید میکنه اگه فرزندان فقط از یک زن در مورد خدا یاد بگیرن اون موقع وقتی بزرگ شدن فکر میکنن که خداشناسی فقط برای زنان هست خدا میخواد که مردان کتاب و مقدس رو به فرزندان یاد بدن ایی نبی گفته پدران باید به فرزندان یاد بدن حقیقت خدا رو بشناسند. پس مسئولیت در وهله اول واقعا به پدران در خانه داده شده. درست مثل افسر فرمانده کشتی که هرگز مسئولیتش رو به کسی محول نمیکنه بلکه فقط اختیار به کسی میده. پدر یا پدر و مادر در خانه مسئولیت تعلیم فرزندانشون رو به کسی واگذار نمیکنن. شاید به بعضی ها اجازه بدن که به فرزندانشون در این مسئولیت کمک کنن. اما هرگز این مسئولیت رو به کسی واگذار کنم. افسر فرمانده کشتی نظامی به افسر تدارکات اختیار میده که دنبال تدارکات بره به افسر توپخانه اختیار میده که توپ‌ها رو کار بندازه. اگه چیزی در هر کدوم از این عرصه ها در اون کشتی بزرگ مشکل پیدا کنه، کسی که در مقابل کمیته تحقیق میاست افسر فرمانده کشتی هست چون اون هرگز نمیتونه مسئولیتش رو به کسی واگذار کنه. فقط میتونه اختیار بده. به همون ترتیب والدین میتونن به کلیسا و مدرسه به طور کلی و به طور خصوصی به بسیاری از افراد اختیار بدن که در تعلیم فرزندانشون به بهنها کمک کنن اما هرگز نمیتونن مسئولیتشون رو به کس دیگه ای واگذار کنن چون بنابه گفته گفته موسی خدا اون مسئولیت رو به اون والدین داده سومین پایهایی که این تعلیم بر اون بنا شده روابط هست. موسا گفته به وقت خوابیدن و برخاستن این نشستن در خانه رفتنت به راه کلام خدا رو به پسرانت به دقت تعلیم ده من اغلب این حقیقت رو با پدران در میون میذارم و پدران میگن این واقع گرایانه نیست چون وقتی اونا بیدار میشن من حضور ندارم و وقتی اونا میخوابن من اونجا نیستم من حتی توی خونه با اونها نمیشینم و با اونها جایی نمیرم من فقط به اونها اینطوری جواب میدم با اونا میگم شما از مرحله پرتی شما کاری میکنید که اغلب مردم شما فرهنگ خودتون رو و کتاب مقدس رو وارونه تفسیر میکنید. بسیاری از مردم کتاب مقدس رو با توجه به فرهنگشون تفسیر میکنند. خب فرهنگ من میگه من قبل از اینکه اونا بیدار بشن از خانه برم و بعد از اینکه اونا خوابیدن به خانه بیام. و حتی با اونها توی خونه نشینم و یا حتی با اونها جایی نرم. کلام خدا باید فرهنگ شما رو تفسیر کنه. فرهنگ شما نباید کلام خدا رو تفسیر کنه. کلام خدا میگه شما باید با فرزندانتون رابطه داشته باشید. وقتی یک پسر جوان بزرگ میشه پدر و پسر به طور مداوم با چیزی مواجهان که بهش شکاف بین نسخ ها گفته میشه. اغلب میشنویم که پدرها میگن یک شکافی بین من و پسرم هست. من نمیتونم اونو درک کنم. معمولا این شکاف واقعی بین نسخ ها نیست. این شکاف بین روابطه. هیچ راهی نیست که شما بتونید این پرورشی رو که موسی اینجا شهر داده بپذیرید. و با فرزندانتون رابطه نداشته باشید رابطه یکی از بخش اساسی این دوره هست من فکر نمی کنم ما مردان اهمیت زمانی رو که با فرزندانمون سپری می کنیم درک بکنیم یادمه که ما در خونهمون یک زمان دعای کوتاه صبحگاهی با فرزندانمون داشتیم از اونا میپرسیدیم که اون روز چطور میتونیم براشون دعا کنیم و از اونا میخواستیم که برای همدیگه دعا کنن شبها هم جلسه ای داشتیم که بهش میزهگرد گرد می گفتیم. توی اون جلسه از هر بچه سوال می کردیم آیا امروز روز خوبی داشتی یا روز بدی؟ بهترین چیز و یا بدترین چیزی که امروز برات پیش اومده چی بوده؟ و آیا چیزی هست که بخوای بپرسی و یا نشون بدی و یا بگی؟ یک شب پسر کوچک هم تصویری زیر سندلیش گذاشته بود ما از اونا خواستیم که اگه میخوان چیزی به ما نشون بدن اونو سر میز بیارن خب پسر کوچک مازیر صندلیش تصویری داشت که اون روز توی مدرسه کشیده بود همسر من که معلمه به من یاد داده بود که نپرسم این چیه بلکه بگم راجب به این برام توضیح بده. پس گفتم پسرم این نقاشی رو برای من توضیح بده. او گفت خب معلم ما از ما خواست که بزرگترین چیزی رو که توی زندگی برای ما پیش اومده نقاشی کنیم و این چیزیه که من کشیدم. ماها پیش من داشتم میرفتم که بدوام. تقریبا در آخرین لحظات تصمیم گرفتم که او رو با خواهر کوچکش توی صندلی عقب ماشین بذارم. بعد اونا رو, رو روی پلههای باشگاه گذاشتم و بهشون گفتم من دور این پیست میدوام و شما دورهای منو بشمارید. همینطور که من داشتم میدویدم اونا روی پله‌های ورزشگاه نشسته بودند و دورهای منو میشمردند. حالا دو ماه و نیم بعد وقتی او به مدرسه رفت معلم از او خواست که بزرگترین واقعی که توی تمام زندگیش پیش اومده نقاشی کنه. پسر کوچه که من پدرش رو در حال دو و خودش و خواهرش رو نشسته روی پله‌های ورزشگاه در حال شمردن نقاشی کرده. این بزرگترین چیزی بود که تا اون روز برای او در تمام زندگیش اتفاق افتاده بود. من فکر نمی‌کنم که ما پدران بدونیم که چقدر برای بچه‌ها مهمه که با اونها وقت بذاریم. اگه شما این دوره تعلیم رو که موسی برای ما تصویر کرده درک کنید، خواهید فهمید که روابط یکی از مهمترین پایه‌ای است که این دوره بر اون قرار گرفته. چهارمین رومین پایه‌ای که بر مبنای اون دوره پرورش فرزندان بنا شده، واقعیت است. توجه کنید که موسی گفته این سخنانی که من امروز به تو امر میفرمایم بر دل تو باشد خدای خود را با تمامی دل جان و تمامی قوت خود محبت نما و بعد این کلام را با جدیت به فرزندان تعلیم بده این رو فراموش نکن ببینید ما سخنرانی هامون رو درباره ارزش ها در با فرزندانمون در میون نمیذاریم و به اونها انتقال نمیدیم ما ارزش های عملی خودمون رو به فرزندان انتقال میدیم عیسی گفته گنجینه های خودتون رو به من نشون بدید ارزش‌های شما مشخص خواهد شد ارزش‌های خودتون رو به من نشون بدید دلتون مشخص خواهد شد به زبان ساده‌تر به من نشون بده که کجا و چطور پولت رو در پنج سال گذشته خرج کردی تقویم 5 سال گذشته تون رو به من نشون بدید نشون بدید که زمان و پول و انرژیتون رو چطور صرف کردی اگر نشون دادید ارزش هاتون رو نشون خواهید داد و نشون خواهید داد که دلتون کجا هست در مورد ارزش‌ها سخنرانی نکنید بلکه ارزش‌های واقعی رو در عمل نشون بدی. یادمه که یه روز با یکی از بچههام صحبت می‌کردم. دختری که خیلی خیلی زرنگ بود. وقتی او کوچک بود من خیلی مشغول بودم. به عنوان یک شبان روزی 18 ساعت کار می‌کردم. اون موقع او حدوداً 18 ماهه بود. یه روز صبح وقتی اصلاح می‌کردم او اومد و و برام آورد. چیزی که او داشت میگفت این بود که تو کسی هستی که اون خمیر رو از روی صورتت میتراشی. بعد کلاهت رو روی سرت میذاری و میری پس بیاین هم کلاهه سالها بعد وقتی او در مدرسه خیلی فعال بود و برنامه خیلی سنگینی داشت و همیشه میگرن داشت همسرم از من خواست که برم پیش او و با او راجع به شلوغی برنامه صحبت کنم خوب روز بعد داشتیم با هم میدویدیم و من موضوع صحبت رو به برنامه های او کشوندم گفتم تو واقعا برنامه خیلی فشرده ای داری اینطور نیست او گفت پدر من اینو از تو یاد گرفتم من تمام این سالها تو رو زیر نظر داشتم تو ساعت پنج صبح بیدار می شدی و تا من به خودم بیام رفته بودی خب می بینید چه اتفاقی افتاده؟ سخنرانی من درباره ارزش ها کاملا بود من ارزش خودم رو با رفتارم به اون انتقال داده بودم بعدها با پسر بزرگم داشتیم راه میرفتیم او به کس دیگه ای اشاره کرد که هر دو رو میشنختیم او به اون مرد اشاره کرد و گفت کاری که او میکنه واقعا مهمه و من چیزی نگفتم بالاخره بعد از اشاره کردن به یک دو جین از دوستای مشترک ما او گفت اما من کسی رو نمیشناسم که کاری که میکنه مهمتر از کاری باشه که تو داری انجام میدی. ایمان دارم که خدا می من هم تمام عمرم رو کاری مثل تو بکنم او به دانشکده الهیات رفت از دانشکده فارغ و تحصیل شد و امروز شبان یک کلیساست. ببینید به قول موسا چیزی که ما راجب ارزش ها به فرزندانمون انتقال میدیم از طریق صحبت هامون نیست بلکه با ارزشهای های عملی خودمونه این زیر بنایی که ما تربیت فرزندانمون رو بر اون بنا می کنیم شامل مکاشفه، مسئولیت، رابطه و واقعیت هست. دوستان خوبم، این نصیحت خوبی برای همه ما از تصنیه باب شیش بود. ما باید تعالیممون رو بر مبنای مکاشفه کلام خدا، واقعیت مسئولیت شخصی، روابطمون و واقعیت بنا کنیم. چیزی که ما میخوایم تعلیم بدیم زمانی موثر میشه که در زندگی خودمون اونها رو بکار بگیریم. عزیزان خوشحالیم که در مطالعه کلام خدا با ما همراه بودین و دعای ما اینه که جذب کلام خدا بشین و اجازه بدین کلام خدا در شما تحقق پیدا کنه چون اون موقع بر تمام عرصه زندگی شما تاثیر میذاره فلن تا برنامه بعد خدا نگهدار خداوند ما عیسی مسیح به شما برکت بده و شما رو در رشد ایمانتون تقویت کنه.